این قلبها رو مخصوص الله بکنید این قلبها مخصوص الله هستن الله بذکر الله تطمئن القلوب این قلب مخصوص خداوند متعال هست خدا میگه قلب فقط با ذکر من آرام میگیره نه با نا با ذکر محبوبه با عاشیق‌ها قلب‌هایتون آرام نمیگیرن داری بخوتن فریب دهید چرا این شاعر میگه که لذتی که در فراق هست در وصال نیست چون در فراق شوق وصال هست اما در وصال خوف فراق این بدبختی انسان در روی کورزویین عاشقانند آشیقان مخلوق چرا البم میگن چرا به خاطر که اول هی جوش میزنند هی قوسته میخورن که می بینم که بهش میرفتم در قصه و در جوش و پریشانی حسی ببینم و که می رسم و که تماس گیرد که ملاقاتی میشه در رنجشان در آنجدیگه خودشون رو میخورن به بعضی به هم دیگر رسیدن به هم دیگر که رسیدن دوباره میتا در وقت تمام میشه دوباره هم جدا میشین دوباره جوش و قسته میخوره اولا جوش و قسته بعد جوش و قسته تا کجا لذتی شد اول آخری با قسته هست و ان نتیجه بندگی و سرفکندگی کندگی بیسته قلبها رو این قلبها پاکن این قلبهای پاکتن را مخصوص الله رب العالمین بکنید اون عشق و اون شوق و اون علاقی که در وصال حق وجود داره در بندگان نیست اونجا دیگه لذتی داره اگر نماز میخانید تصور کن باری طالت داره بنام میبینید در جلوی اشان داره من تعظیم میکنن چه نمازی و چه شوقی بشمان دست خواهد دار لذت میبرید صفا میبرید از این در قلبتان کسی رو جا بدهید که رب العالمین هست در قلبا با کسی رو داخل اون برده کسی قادر مطلق هست خالق هست آمرو امر فعال لی يريد اگر یک این بشه فوراً انجام میگیره کن فیکون ناگفت کن کار صورت میگیره خداوند مطال بر انجام کاری نیازی به هم نداره این کلمه رو تا ما بفهمیم آشکیل شخصی باشید آشکیل محمد رسول الله باشید این انسان های الا شما فکر می کنید که مثلی در دنیا نیست اون شخص شما عاشید دیگری ببین این ک که دنبال جافتهی. به نظر تانت فقط برای خود تان مهم است برای دیگران هم مهم نیست و کسی رو بگیرید این قلبها با وجودونها آرام نمیگیرن فکر میکنید اگر به این رسیدین همه حل میشه به دنیا میرسم دنیا رو من دادم و اینجوری نیست اینجوری نیست دنیا رو به شما نمیدن اون هم انسانی هست ضعیف، ضعیف و اگر نگاه بکن در وجود پر از کسافت هست هر سراغ خدا درست کرده از همه کسافه بیرو میاد. از گوش نگاه کنی، از بین نگاه کنی، از دهان نگاه کنی، از هر جا نگاه بکنی کسافه میاد بیرو. و در سکمه هم چند کیلو کسافه داره میکردن. در مداخلت میان، در مساجد میان، پس اشیا عاشق چنین شخصی باشی. اشی خدا رو در دل بگیرید. خبرو یارک دیدی آشیگ رو یاش ما باش. اشقو در دل بند و عاشق نقاش باش. نقاش که بود این اور زیبا خلق کر خودش که قدر زیبا هست ذات باری تعالی بیش از حد زیبا هست بعضی میگن یک نگاه و یک دیدار باری تعالی بیش از چهل سال طول میکشه فکر میکنی یک لحظه شده بیش از حد زیبا ذات باری تعالی خداوند متعال وقتی انسان رو به این زیبایی خلق کرده در خود چیکار میکنه ايش النبي كريم بدل ببنديت كي شاعر چه بيگه واحصر من كلام ترقت تو ايلي واجمل من كلام تلدن نساو خلقته مبرر من كل عيب كانك خلقته كما تشاو واحصر من كلام ترقت تو ايلي زيبات راستو هرگز چشمهاي من نديدن واجمل من كلام تلدن نساو زيبات راستو هيچ معذري خلقتا مبره من کل عیب خالب شده اید از هر عیبی پاک که خلقتا خولیقتا کماتا شاو گویا تو رو خال کردن خود خواسته اید انسان جروع آنه نیسته یه شداره سفید میشه ای کاس سفید نمیشدن باید بیدین جوری میبود باید عبروها این جوری میشدن باید رنگ این جوری میشد باید قدم این جوری میشد اندام این جوری میشدن نبی کریه چجوری خلق شده؟ گویا خودش دستور داد اینجوری من خلق بیکنید وقتی که کسانی که نبی مکرم اسلام را میدیدن جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی میگن یک شبی من مسجد نبی آمدم نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم موها برشانها افتاده بودن یک لباس سرخ رنگی پوشیده بود و ماه چهارده هم تلو کرده بود از یک طرف نگاه بر ماه می کردم از یک طرح به نبی کریم نگاه می انداختم مقایسته می گردم این نبی کریم زیبا بود که دوباره چهره من به طرف ماه بر نمی گاش. بیش از حد می زیبا بود بیش از حد زیبا بود حضرت علی ابن نبی طالب رضی الله تعالی در دیوان در حضرت علی شما شما نشنیدی هم دیوان, دیوان, دیوان شیر در شیر درست کرده این قصیده به بزرگی در وصف نبی مکرم اسلام صلی الله و وسلم داره بیان میکنن آخرش میگم آخر قصیده نبی کریم و مند نقاش دارن نقطه نقطه و رسم میکنن اینجوری بینی اینجوری بود، چشمای انجوری بودن، آبرو اینجوری بود، بالای بین اینجوری بود، پایین بین اینجوری بود، لبها اینجوری، دندان اینجوری، سر و باریک بین سرط بود، کلو دستها بین صورت بود. داستان بسیار زیبا داره تر هی بیکنه، بسیار زیبا در نقشه رو میکشه در پایان میگیره که هاشمی متکلمون. من منهجی متعلمن، داری هاشمی داره ثنوبت میکنه یعنی خودش از بنی هاشم بود داره صفات نبی کریم بیان میکنه میگه از ذوری اون پیغمبر من دلم به درد آمده اما یلی به دارم اعتراف بیکنم که به قصر فهمی قائلون هنو من در اعترامی هنو هنوز پیغمبر منظر نکردم هم اگر بگی هنوز درک کم بگم از اینها زیباتر بودو و آخرش میگیات که به زیبایی نبی کریم نه قبلها دیدم و نه بعدها دیدم مثل اون را بسو در دنیا بسدون الله رب العالمین نفرستان اینها قسمت دل بستید اینها امروز زیبا فردا کسل چهل اگر میگه بود در جوش ما هست. فرده پیر بشه باقی دوستش دارید؟ نه پس فایده ندارید دوست در کسی را که همیشه با تو هست در قبر موندست جان هست در آخرت دستگیر هست ذات با دیتالا اونو بگیرید محبت با دیگران نکنید خدا وادی مطال همه ما و شما رو توفیق انعید فرماید